غیر از خدا هیچکس کس نبود محمد کلی بود که از مال دنیا هیچی نداشت روزها خارکشی میکرد و شبا میومد به خونه یه روز به ننش گفت ننه جان ننه برام هفته فطیر درست کن که میخوام خوام کنم و برم ننش گریه کرد و گفت مادرت بمیره تو همه کاری این خونه هستی؟ میخوای کجا بری؟ محمد گفت همین که گفتم میخوام برم پیرزن از روی ناچاری هفت و فتیر درست کرد و محمد اونها رو توی توبره انداخت و از خونه بیرون رفت رفت و رفت تا رسید به یه چاه خسته و مونده روی چاه نشست یه پاش و این ورد راز کرد و یه پای دیگه شو اون ور هفت و فتیر رو هم و وسط پاش. یکم به فتیران نگاه کرد و گفت الان هر هفتاتون رو میخورم حالا نگو هفت و دیو ته چا خونه دارم دیوا به خیال اینکه اون میخواد اونها رو بخوره گفتن آی نخور نخور نخور تا یه چیزی بهت بدیم محمد پرسید چی میدین؟ اونا گفتن یا آسیا دستی محمد گفت آسیا دستی میخوام چیکار؟ دیوا گفتن این آسیا فرق میکنه. از این بر پرتش کنی نون میده از اون ور دیگه پلو. گفت بنداز بیار ببینم. اونها آسیا رو اینداختند و ممد اون رو گرفت برش داشت و این پرتش کرد نون ازش اومد. اون ور پرتش کرد پلو بیرون اومد. آسیا رو برداشت و توی توبرش اینداخت و اومد بخونه. داد زد ننی. مادرش پرسید چیه؟ گفت وردار اون سفره بزرگ رو بیا رو پنگ کن. مادرش سفره رو پنگ کرد و گفت سینی بیا. سینی هم اوورد بود. نشست و کله تاسش رو برهنه کرد. سنگ آسیا رو همین جوری تاب داد و تاب داد. از این ور فرد و فرد پلو میریخت از اون ور نون. سنگ رو برداشت و همستایه ها رو خبر کرد. هم خودشون خوردن و سیر شدن، هم به هم سایه ها دادن. خلاصه چند تا خونه اون طرفتر یه مرد سیبیل کلوفتی خونه داشت. یه روز مادر و پسر رو غافلگیر کرد و سنگو ازشون دزدید. این بنده های خدا هرچی دنبال اون سنگ ها گشتن، پیداش نکردن. از هر کس می پرسیدن، می ما خبر نداریم. مادر و پسر دیگه به چه کنم چه کنم افتاده بودن و دیگه نمیدونستم باید چیکار کار کنن. مرد سیبیل افتم. سنگ آسیاب رو که دزدیده بود. حسابی ازش پلو و نون میخورد خورد. ما اینکه که گذشت ممت کل به ننش گفت. ننه هفته فتی درست کن که میخوام قهر کنم. ننش دوباره هفت و فطیر درست کرد ممد رو توی توبره انداخت و دوباره رسید سر همون چاه فتیرها رو نگاه کرد و گفت الان هر هفتاتونو میخورم دیوا از توی چاه داد زدند آی نخور نخور تا یه چیزی بهت بد بدیم گفت چی میدین اونا گفتن یه بزغاله ممد گفت بزغاله میخوام چیکار این بزغاله با بزغالهایی دیگه فرق میکنه دیوا بهش گفتن بزغاله رو که بکشی و گوشتش رو بکنی استخوناشو می‌ریزی توی پوست باپا بهش میزنی و میگی؟ گدای بلند میشه و میگه ما گفتش بندازید ببینم دیوا براش بزغاله رو از توی چاه پرد کردن بیرون بزغاله رو برداشت و اومد به خونه اون رو کشتن و پوستش رو گرفتن گوشتاش هم برداشتن حالا توی پوستش با استخونها پر شد باپا به بزغاله زدن و گفتن که ده بزغاله حرکتی کرد و گفت ما از فردا کارشون همین بود وعده به وعده بزغاله رو می‌کشتن و گوشتشو سرخ می‌کردن هم خودشون می‌خوردن هم به همسایا میدادن مرد سیویل‌کلف دوباره اونها رو غافلگیر کرد و این دفعه بزغاله رو دزدید بنده های خدا موندن که چیکار کنن نه چیزی دارن بخورن نه محمد کار خاصی بلده هیچی بلد نیست به جز خارکنی دیگه یه روز که دیگه واقعا گرسنگی بهشون فشار آورده بود محمد گفت ننه مادرش گفت چیه گفت هفت تا درست کن که دوباره میخوام قهر کنم ننش هفت تا درست کرد و اون هم اونها رو توی توبره ریخت و رفت رفت و رسید به سر همون چاه. مثل قبل پاش دراز کرد و گفت الان هر هفته رو میخورم. دیوا دوباره داد زدن آی نخور نخور تا یه چیزی بهت بد بدیم. گفت چی میدین گفتن یه کدو. گفت کدو میخوام چی کار؟ اونا گفتن این کدو با بقیه کدوها فرق داره. با هر کسی دعوت شد بهش میگی هرز و گرز. بشکی بیرز. گزکو، پارکو، در رواکو، تا چهل تا چماق به دست به آن چهل تا اجنه نزد توی کدو بیرون میان و خودشون یه وجب چماقشون ده وجب کلاه کاغذی سفید به سر، چکمه به پا آی میزنن اون نفر رو لهو لوردش میکنن محمد گفت بعدش چیکار کنم؟ اونا گفتن میگی؟ کل کدو کل کدو کل کدو همه صاف میرن تو کدو و باشه بندازید ببینم اونا دوباره کدو رو براش انداختن و رفت به خونه حالا رفت رو پشت بوم مرد سیبیل کلوفت و گفت آی امو از بابایی که دوزدیدی ازم یا بهم هم میدی یا پدرتو در میارم مرد سیبیل کلوفت و دلش گفت دک محمد کلو این شجاعت و بلند داد زد و گفت غلط زیادی نکن کی گفته تو من اندوزیدم محمد گفت نمیدونم میدی یا به زور میگیرم مرد گفت برو دنبال کارت اونم برگشت به خونه و گفت اکدو هرز و گرز بشکی برز پاره پارکو، در رواکو، چل چماق به دست. چل تا چماق به دست مثل مور و ملخ از کدو بیرون ریختن و اومدن سراغ مرد سیبیل کلاف. حالا نزن و کی بزن. همچین زدنش که نرم نر شد. مرد دادزد گوه بایی مممت کل دستم به دامنت. ناد و جمع کن تا بهت بگم کجاست. مممت گفت. ای کدو کلبه کدو کلبه کدو کلبه کدو،, کلب کدو عجینا همه رفتن تو کدو مردسی بگی کلو گفت نیوین چه کردی؟ کلم باد کرده از فک و دهانم خون میریزه رفت و سنگ آسیا و بزقاله رو برداشو آورد حالا دیگه از تا شب ممتگل مینشست و سنگ رو به این ور پرتاب میکرد گر رو گر پلو میری به اون بر ازش نون می ریخت باز خاله رو می و گوشتشو با پلو می خوردن. دیگه کارش این شده بود هم خودشون رو هم به همسایه ها می دادند مرد سیبیل کلوف که منتظر فرصت بود یه روز ممت کل و ننش و قافل گیر کرد و دوباره کدو رو دزدید دست ممت از زمین و زمان کوتاه شد بعدش هم مجالی نداد که نفس تازه کنه. سنگ آسیا و بزخالر برداشت ازشون دزدید دیگه اینها همون گرسنه اول و بیچاره اول بودن. دوباره از نو هفته فطیر مادرش درست کرد و ممتکن رفت سر چاه دوباره گفت الان هر هفته رو میخورم. دیوا با خودشون گفتن این چه، اینجوری که نمیشه. چی داشته و نداشتیم دادیم به این یه نفر بره بالا ببینه این چجو جنوریه یک از دیوه از شاه بالا آمد و دید یک کل نفله یه که با یه تنبان سیاه سر چاه نشسته تا دیو از شاه بالا آمد و محمد کل چشش به اون افتاد که شاخا فلاج فلاج بدن مثل پوست پلنگ خال خال بلند شد و پا به فرار گذاشت حالا ندو ای وقتی به خونه رسید دیدن که محمدکل از طرز خودشو خراب کرده گفتن آ چیه کل این چه وضعیه گفت رفتم لشکر قره قیتاس رو شکست دادم اینها عرق فتحه.